می سوزم از فراغت روی از جفا بگردان هجران بلای ما شد یارب بلا بگردان محجل و می نماید بر سبز خنگ گردون تا او به سر در آید بر رخش پا بگردان مرغول را برفشان یعنی به بر رغم سنبول گرد چمن بخوری همچون سبا بگردان یغماوی اغلودین را بیرون خرام سرمست در سر کلاه بشکن در بر بگردان ای نور چشم مستان در عین انتظارم چنگ خزین و جامی بنواز یا بگردان دوران آن نویسد بر آرزش خطی خوش یار نوشته بد از یار ما بگردان حافظ خوب رویان بختت جز این قدر نیست گر نیستت رضایی حکم قضا بگردان